بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله ایلی و رسول الله آله طیبین الطاقرین المعسومین و لانتو دائما اللهم جميع المشهدین و بخص درباره باره روایات مبارکی بود که در حرف لحیه فوقها رو تمسا کردن این به روایتی بود چه به مسئله روایاتی که در اخذ از لحیه است حرض کردیم که اینها ولو غیر از عنوان حلقه میشه که اونها در ما نحنفی تمسک هم تمسک هم کردن یک حدیث که صادرنده به نظر استاد صحیح بود به یک جهت حالا هم صحیحه به جهت دیگه و از جهتش را هر کرده حدیثیست به شماره پنج در باب شست از ابواب آزاب الحمام به 111. این حدیث به لحاظ که الان ما داریم ترتیبش اینجوریه به لحاظ اون کتابی که به ما الان رسیده من مستر من این که حدیبش مسترش مختش بوده علی بن جعفر اینه. کتابی که به ما رسیده اول بار این حدیث در گربل اصناد مرحوم همیری اومده انز کردم کرارن و مرارن و تکرارن مرحوم عبداللّٰه هم جعفر هنگری که یکی از بزرگان قوم فوق العاده انسان انصافا بسیار شخصیت بزرگواری است. ایشان استاد کلینی نیست، ولی که به نظر من کُلینی شاید در نوجوانیش اون درک کرده کُلینی شاگرد پسر ایشان محمد بن عبدالله در کتاب کافی زیاد محمد این پسر ایشان و ما یک به اصطلاح توقییات مبارکی به توقییات همگیری اون توقیات هم مال پسر حال محمد دارد یک گربل اسناد داریم اون گربل اسناد مال پدره دو تا با همگیری اشتباه و عرض شد تابقا که اسناد اصناد در اون زمانی که ایشون نوشتن در سال تقریبا نزدیک نزدیکاری سیتر وقتاتشونه سال 297 و و وارد کوفه شدن مرحوم نجاشا رو بعض دوستان مایرن مرحوم نجاشین نوشته که سال 297 و و اندی معین شکرده اما در رساله عبدی غالب زراری آمده که وقتی همگیری آمد به کوفه سال 297 و و بود و من کمونزه ساله بودن ابتدار سماع حدیث بود و درست نیم درست ایشان سال 297 و و به کوفه آمدن خب مثلا با کلی عادتا هم این شخص و در کرده به راحتی در کردهون کمث ۲۹۳ سال مسله نیست. اما به همان ازشان نقله میکنن که سرشان بر. میشون در سال 297 به کوفه مادن خیلی مناصل در نک لکیفی که مردم جرشتهیشون به کوفه مادن اهل کوفه از ایشان حلیث سماه کرده. خیلی همسینی واقعا مشون میده حضمت این شخصیت بزرگی علمی در بام، اینقدر این بزرگوار بوده با این که احادیث خود مبداش کوفه باشه احادیثش از کوفه اومده حالا مثلا این حدیث مبداش از علی بن جبر از مدینه است. یعنی مرحوم هینیری احادیثش معظم اینها از احادیث اهل کوفه و اهل مدینه و بصره یعنی مال خود قم نیست مال امام صادره ها که از قوم نیست لكن اینقدر این, این مر بزرگوار بوده و اینقدر این, این و مصحح احادیث بوده که بزرگوار اهل قم تو بزرگوار این طریق عظمت علمی ایشان و بزرگواری از خواهر ما که تا چه مقدار دنبال صحت سند بودن از کدن مرحوم هنگیری عده از کتب رو به قرب اثنان این قرب اثنان یعنی واسه کم اصطلاح اینم این که ارز کدن این بود مخصر شخصیف علمی یک سال حتی دو سال سه ساله بودن پدرشون جدشون می از یک استادی که هشتاد ساله است اجازه می گه تا کی میشد ساله خود خب واسطه شد اینجوری دیگه دو تا 80 سال چتگیا 80 یک واسطه این یک از تا کارها دیگه فنی حدیثی این بود که, که به سن سنه شیخو قد میرسیدن یک قربه اصفهان در نمیوشه چند تا دلیل احساسش نمیشد که مثلا این واسطه یه چند داره ما ایشون یک قربه اصفهان در صادق دارن قربه اصفهان در ذات دارن قربه اصفهان در تو موسی دارن به موسی بن به دو باسته یکی نوه عبد الله ابن بن جعفر که قوم آمده از خیلی متاسفانه ما از این آقای نوه خبر درستی نداریم اسمش عبد الله ابن حسن حسن پسر علی ابن جعفر اینه عبد الله بن حسن علی بن جعفر این نوه خود علی بن جعفر یشون به قوم آمده چون بعد از آنها درسته محسومه و بعد از تشکیل خیلی خوب موقعه سادات مخصوطا سادات مختلف مثلا در مدینه شده توید بر سادات میمازن قوم دیگه اینجا محترم و عزت دارن دیشون خوبه علما بودن این جبل این آخوا امس این در کتاب تاریخ قوم بیر مناسبت یک تسمیشان رو برده تاریخ قوم و نوشته که شرحالش در اون فصل علمای خواهند کتاب تاریخ خواهند در علمات اگر حافظه من خراب نشده باشه اون فرق اصلا به ما نرسیده کلا موجود نیست اگر اون فرقی پیدا بشه انشالله فی ما بر معلومات ما از عبدالله از حسن بیشتر میشه. الان معلومات ما نداریم متاسفانه ما جز این که ایشان نبه یه علیه ابن به قوم آمده است و. کتاب جدش رو برای یا نهار کرده دیگه همین معلومات ما همین تمام شد مثلا فرقی کلینی به یک واسطه دیگری از ایشون نهار کرده باشه قومی از این نهار کرده مثلا بزرگان خب هیچی الان ما معلومات نداریم تا اونجایی که ما داریم شاید یک جیدیگه من بیدن ایشون کتاب دیگری هم نهار کرده از دیگه... این کتابی که در مدینه موجود بود که مثلا تعلیف خود مکه و مدینه از کتاب عبدالله همیمون قده هست چون ایشون خودش اهل مکه بود خوب برای زیادت مدینه عبدالله بن حسن مثلا کتابی نقل نکرده نمیخرم چه قرار از چجور چی بوده مانهسرن کتاب جدی کرد کرده اینه مطلق میفهمه همین مقدار این هم که مردم استاد قبول نمی کنن به خاطر جهالتی ایشونه که اشکام ما کردم. از کلا از بعض عبارات تاریخ قوم معلوم میشه ایشون شخصیتی بوده و غیر سیاسی بوده غیر از علی بن جعفر که این اجمالا شخصیت بوده اما ما هیچ اطلاعی فعلا نداریم اطلاع ما خیلی محدوده فوق العاده محدود از ایشان نسخه ای و از کتاب جدشون اوردن، از این نسخه به نظر با دولیستان یک من دیدم خیلی کم نقل شده احتمالا محوم آقای به اصطلاح محوم عبدالله همیری همه این نسخه نرم ما نمیدونیم اون رو فرم خب آیا چون من این نکته رو چند بار عرض کردم بعضی از روبات ما بعضی از این کسانی که نسخه نقضی میکنن اینا مردمان دقیقی هستن بزرگوارن نسخه رو دقیق نقضی میکنن این یه جور نقضی بعضی وقتها کسانی که این نسخه نقضی میکنن اضافه برای اینکه که دقیقا اختیار خودشون هم وارد میکنن چرا؟ کار مثلا این روایت قبول ندارن این تو اجازه دیگه اجازه نمیدن نقضی کردن در کتاب وجود بوده اینرو ما اسمش مین تنغیح و تسیح و پالایش مثلا ابراهیمهاشم از قسم اول چن بار ه نته ذریف ابراهیماشم ناقل ثابت نکرده که ایشان تنقیر میکرده فرضکن نسخه نوفل سکون بوده رزه ایر قوم نقل کرد الا رواتش قبول داره ن کار ند نسخه و نقل کد ناقل دقیقیت خوب دقت کن ناقل دقیقیاست اما فرض احمد اشعری احمد اشعری رفته کوفر میراس کوفر ارده قوم ایشون اضافه برای که ناقل فوق علاقات درگیزی و که تنقیه هم کرده یعنی مثلا این رواست کتاب قبول نداشته او را از اجازه انداخته یا اگر در که آمده از اون کتاب نقل بکنه اون مقداری که قبول داشته نهاره کرده عبدالله این جعفر هنگری که رو بزرگانه نمیدونیم آیا تنقیه کرده الان این کتابی که به اسم ایشان هست؟ از روایات علیه جعفر حدود دیویست روایت داره این کتاب ایشان آیا این تمام اونیست که عبدالله نبه ایشان برده ایشان تنهید داره این هم بمگونیم ارزم این روایت در این کتاب آمده پس یک نسخه اولی که ما داریم کتاب علیه جعفر به نسخه همگیری که به قلعه مشکل چیز دارد البته کتاب علی بن به دو نسخه صحیح در اختیار ها بوده یعنی هم صدوق در اختیارش بر کلینی و هر دو هم صحیح. این دو صحیح از کتاب دیگری این دو بزرگوار هم نیاوردن خیلی ملفت می‌شه این دو بزرگوار چرا خب دقت خاطر به خاطر اینکه کلینی و مردم صدوق در کتابشون وقتی مخاطب گذینشی گزینشی کرد ناقل صرف نیستن امتیاز اساسی فقیه و کافی اینه هم کافی، هم فقیه کل روایات رو نیاردن اونایی که قبول دارن آوردن لذا اگر نیاردن علامت نیست که نبویجه دروغه ممکن قبول نکردن اما مرحوم شیخ توسی اینجور نیست شیخ توسی همه رو آورده به لذا اگه قبول نکرده رد کرده گفتی این خبر رو همه برکزا میکنه بین کلینی و صدوق از یک طرف و شیعه تصحیع از یک طرف دیگه مروونی شیعه چون شیخ توسی از شیعه تصحیع مشایخ کلینی و شیعه تصحیع از نیراپور این مشایخ ثلاثه این حدیث رو از کتاب علی بن که هر سهشون هم دو نسخه صحیح داره هر سه بزرگوار میساوتن یکی هیچ کدامشون این روایت علی بن جعفر نرد نکردن اما علائم ضعفش رو قبول نکرده حالا به هدم قبول شن چون من در بحث های رجالی اون جنبه مطن و جنبه به اصطلاح فتوا و عمل با هم در نظر بگیریم چون در صابق در حساب بعد از این کتاب کتاب دیگری که ایدونه باید آماده در قرن ششم مرحوم قبل ادریس از کتاب جامعه وزنگتی نهاره کرده و بسیاره مقومه استاد صحابه منت اینه معتوم میدونستن اخیران برگشتن کل مستطرف ها سو ایشون حجیت نمیدونن الا کتاب نوادر مصنفین محمد علیم محبوبی و نوادر مصنف غیر از که دیگه بقیه های ایشون حجیت اون یکی اولا ایشون حجت نمی‌دونستن. به خاطر عبدالله هاون هستن و حقا با این مطلب. که این روایتی که در کتاب بزن کتاب صلاح ابن ادریوس آمده اصلا مال بزنطی نیست بخصو حجیت مثلا به نظر من این کتاب دیگری بوده که یکی تیکش کتاب علی ابن جعفر تیکه اولش علی جعفر و بزنطی هم از علی جعفر نه پس به نظر ما این مرجعش و همون و با همون نصه و قربل اصنا با اون مصدر سومی که در اختیار ما الان هست از این کتاب در قرن یازدما مرحوم مجلسی و مرحوم شیخ قرآمالی یه نسخه از کتاب علیم جنفر داشتن که مرحوم مجلسی یک جا توی رحالی جل ده مرحوم استقراشن صاحب و صاحب هم تبریجن در کتاب استقراشن چون این دیگران اینجا طولانی میشه ما نمیخوایم شرک کنیم. اون نسخه از فرق. اولاً وجاده هست که اول کار هم بهار وجاده هم وساقه مرموم استاد این تصور کرده که چون مرموم سال وساقه طریق صحیح شیخ توسی بارن شیخ طوسی هست طریق صحیح کتاب علیه نجفر پس این کتاب این نسخه معتمره و شون ایشون تو آخرم در بر همین بود هر جا در وساقه اون رباه علیه نجفر کتابه ایشون قبول کرد. وضعیات خاطره است یعنی ناشی از عدم دقت در عبارات خود وسایل در جلد این چاپ مرامای روان جلد 20 این چاپ جلد جک اون خاتمه ای که داره اگر حالا جمع می شود واضح میشه 2960 حالا توضیحاتش اون چرت توضیحات شد طولانی میخواد طولانی که مناسبش این نمیشه به هر حال به نظر ما نسخه رسائل به انگلاو نسخه بهاره هر دو نسخه به هر همگانش هم داره که هفته ما فلان سال سی سال چلونو سی به نحو رجاده رسیده تو سندش هم داره اصلا اون نسخه در روایات ما قبل از وجود نداشته من یکی یا دو طور روایات از اون نسخه در اکتاب کامل و زیارا دیدم دیگه وجود نداره انصافاً نسخه یه شازیه بین حساب ما و یه شرحای دیگری که الان بلجنس. نسخه در اختیار دعایم بوده دارمون اسلام که اسماهیلیز از این نسخه نقل میکنه از کتاب حضیر جفر هست همین نسخهی که در اختیار سابده ها بعدها قرار بیرس اون نسخه هم ضریفه زر. پس این روایت مبارکه غیر از این که این سه بزرگوار ما از دو نسخه سعی نقل کردن در مجموعه یک طوری که ما بشیاریم ضریفه به لحاظه فنمین یعنی به عبارت دیگر خوب دقیق بکنی زعف در اسطلاح معتقدین زعف رجالی نیست ممکن است در اصل کتاب علیان جعفر بوده من تو بحث ندارم سه تا محصر از اون نعار میکنه. ممکن در اصل کتاب علیان جعفر بوده اما تلقیه به قبول نشده تو مرحله تنقیه روشن ستیم حالا تو, تو مرحله تنقیه و تصویب با سانسور حضر شده این روایت حضر شده محکم هست اونجا حالا این نقطه چی بوده ببینید خود صاحب وسائل که اخباری مسلکه بعد از اینکه این روایت فهمیده عبور و حالا محمول و عدم زیاد علاقه بزده پس این روایت توجیه میخواسته این روایت توجیه توجیح میخواسته یعنی خود صاحبات هارم توجیح کرده شاید سر ترشین بوده شاید من نمیدونم شاید سر اینکه که مرحوم و کلینی و سرو و این که دو سریع صحیح به کتاب اینجا مجرد داشتن این روایت رو نبوده حالا این چرا چون اینجا از امام سوال میکنه انتظر به این سوال یا اما میتوان از آرزه این شما همه از جلو نه, جلو نه. خب ببینید ما اون چیه از تیغنبر داریم چون رو باید همه ناظر به احادیث رسول الله چند دفعه اصول یکی اعفالله ها دیگه طبعا احنی سنت و دیگران بحث کردن که این احای یعنی رویش رو گلی کردن این زکران فردا میکنه. اجلویش از طرفین میری صحنه خود ریشو بده. اهل سنن یه حدیث دارن که در سوال 7 فقط در کتاب ترمذی آمده بقیه نهی آوردم. ترمذی یه نقل از بخاری میکنه کنم. یه سهل تو محمد بن اسماعیل یه چیزی میگه راجع به اون حدیث داره. در اونجا داره که اخذ من طول لهیته و هرضا. تعهید نداره. قبض و نیست. اونجا هم احضه یعنی پیغمبر هم از بغل محاسنشون هم از جلو کوتاه میکنم دیگه چیزی نداره احضستان از پیغمبر دیگه چیزی نداره روشن شد این؟ بعد از خود زمان صحابی بحث شروع شد, شد, شد که آیا احف الله ها یه کردن بزرگ کردن و بلند کردن یا ازا تفسیر قاید بشین یا تفسیر قاید نشین از عبدالله ابن عمر را از صحابه هم. تا یک عرضه عرضه از صحابه شروع شده از زمان رسول الله نداریم این تصور بیاد بعد که مرحله فقه آمد خوب تصوره تاریخی که فرمیدیم تو مرحله فقه آمد سه تا شد نه از پهلوها بیگی یا نه اجلون بیش این یه رعی حقیقی هم نداشت رعی دوم دو این شد که کلن به مقدار قبضه یک جلو و قبضه فرم نمیکنه. از اینجام به مقدار قبضه بگیرید از این به مقدار قبضه چه از پهلی چه از جور شد این دو تا زائده بر قبضه گرفته بشن رأی استقومی این که نه اون مسئله قبضه مثلا مسئله به اصطلاع از پهلیو بشه ولو کمتر از قبضه پهلیو رو میشه کوتاه کرد اما جلو رو باید اعفاء کرد جلو اعفاء این سطر معنا یعنی به سطر اینه که رئیسه مو که تلفیق این که ترکیب آرا و اون اینه که شما از فهم بگیرید نمیخواد قبض ما را واشیم گلو کوتاه بکنه مثلا بقول اونجا ماشین شیشه مثلا از اما از جلو راهو بکنیم تا قبضه پس اون بحث قرضه که از شروع یکی این که آیا در طرف هم اعتبار بشی یا نه یکی این که در جلو اعتبار بشی یا نه یه رعی این بود که شما طرف این رو میتونی کوتاه بکنی جلو رو بزرکن اون احفلها لها اینه این جلو رو بکنی یه رعی این بود تلفیه قبضه رو در پهلو نیاریم پهلو از قبضه کوتاهتر کتاحتر اما جلو رو تا قبضه پوچه که یه بر اینجنت از پیغمبر هر هرزه رو بطیم بگیرم حد در قبضه نداره یه خود من طول دهیتی و هرزه فرق فرم میکنم. اونی که الان از حاق ما این مثل صاحب و صاحب فتوا دادن راجع به عرض محدود نکرده عرض می شما عرضی می کوتاه کتاب بکن. به قبضه محدود راجع به طول رو به قبضه طول یعنی پایی پایی ریش این رو تا قبضه زائد بر قبضه محدود خوب راجع نکرد پس اون که اخذ از طرفه محدود به قبضه هم نیست کمتر از هم می توانی بکن نیش اونی که لهی اس از جلو این رو اعفاق بکن تا قبضه پس نه اینکه بگیم کلا میشه کوتاه کرد نمیشه بگیم کلا نمیشه کوتاه کرد نمیشه بگیم پهلو رو کوتاه کرد جلو رو کوتاه ول کرد اینجوری جمع بکني نم ج رونب پهلو رو مغید به قبضه م کوتاه بکني جلو رو مغید به غبضه بشیم این آراز اینشالا مشخص خود حدیث چیم که سهل تو ارنبرجور یه سوی احلی اخوانه یه خود من لهی یه سه قاله اما من آرزه ببینید آرزه و مقایده به قرده نگر یعنی مطلقا میشین کتا کنید و اما من مقدمه ها فلا اما از مقدم نه رخیم با اون رأی مشهور که اون روزه قرده به مقدم ده با اون نساخت پس این یک رعیه که آرز رو میشه کوتاه کرد مقدم رو نمیشه کوتاه کرد یعنی همون دراز بسه و اما من مقدمه ها فلا این مسلمه بوشن شد مسلمه خب من رو ساب و سایه قبضه رو قابله ساب و سایه لذا بخصه و هم مامل مقدمه خب ها فلا مقید میشه به قبضه. یعنی از مقدم تا حد در قبضه اشکال نداره زایرش این کیفیت جمع نیدنه برشن شد این کیفیت ایشون جمع کردن حالا محمولان علا عدن زیارت علا قبضه سه چرا میگم جمع؟ چرا میگم لمایتی انشاءالله لمایتی برادش از مایتی باب در دو, دو بار بعدشه باب 65. با استحباب قصف بازار ان قبضه خیل منه لحیه بابیشن اینجاست ایشون میگه اگر بخیم با روایت قبضه جمع بکنی نتیجه جمع میشه خلاصش از بسید ممکن که میگه خب شما روایت قبضه رو با آرزم بزن دیگه چون روایت مقدمه لحی رو واسه قبضه رو آرز هم چا قبضه, قبضه؟ چون در روایت قبضه خب اونان قبضه این ایشون مخواد هم روایت قبول کنه هم روایت قبول قبضه رو نتیجه از طرف این مطلق میشه کوتاه کرد در و از کم کرد از جلو تو امدازه قبضه بین بکنه تو از از از قبضه و از نه بروشه این شاید همین سر این بوده که مرحوم کلیمی و مرحوم از کام خدمتون که صدوق این ر چون شاید تصبر کرده این رواید بارواته خبزه نمیسازه احساس میکردن این رواید این که مقدمه لحیه و مطلقا دل بکنی این خلاصه نظر مرحوم صاحب وسائل نسبت به این حدیث مبارن اولا روشن است که این حدیث متأسفانه با ورود دسته نصدر اولا یکی این یکیه این دوتا که علیم جعفن هم یکیش کتاب رو جامعه بزنیست و اون روایه که علی ابن جعفن کتاب علیه اینجا و آیا در کتابش شهست احتمال شهست در کتابش باشه احتمال احتمال زعیبی نیست آیا جیت داره الان با این حسانید نداره به فهرستی هم مشکل داره اون مشکل فهرستیش این از اون سه بزرگوار نیوردن با اینکه که نصحی صحیح این کتابش نداره در اینجا نگیرم جهلی مثلا جهل باشه احتمالا تنقیل شده پالایه شده این راجع به این حدیث که این که ضعیفه یا؟ نه یه اورده اصلا نه یه کلا این خصوصی بیشتر دسمتایی که از خود با این که به تو برندگرپن پیشش بوده بیشتر از سل کافی اورده کافی نه یه نه هم نه برده. این راجع به این مطلب. و اصلا من یک نکتهی رو دیروز خارج بحث ارکام خیلی طولانی هم. این, این روزن نمیشه یعنی خیلی بحث طولانی میخواد مقدمات داره چند روزتون میگشه یه احتمال ما دادید که این رواهات علیان جعفر یه اصلی داشته باشه این مال زمان موسفر جعفر نیست احتمال دادید که برگرده به یه چیزی شبیه زمان امام ساده بوده اصلیان زمان امام باقر باشه احتمالی که داریم اینه. حالا توضیحات که گریه کما این که من کلارا نهرس کردم یک کتابی به نام على قضای آبستان الاحکام از انی المؤمن سامداره مفرح بوده که این کتاب على قضای آبستان تا زمان امام باقی هم بین شیعه شده بعد از این روایاتی که را کتاب سکونی آمده یا از این قبیلت را همینجا نظرم اینا ما ریشه ها شد کتاب علاقه و رو از احکام پیدا کردی نه که اون کتاب هم پیدا کردی شواهد به اون میخوره. ما قدیمترین شاهدی که برای این مطلب داریم از سیغم برای کردن یعخوزو من نهیتی من طول ها به هر با نه توش قبضه داره نه توش تفصیل ما بین عرض و طول داره نه اندازه داره لیکن در متون ما حالا چرا این کارم نشده نفهمیدیم چرا؟ چرا در جهتر یاد جا نیفتا احتمال میدیم در کتاب سکونی بوده سکونی هم در واقع در همون کتابی که از کردم مال امیر المومنی سرابات الله سراب علی در اونجا بوده حالا دقت بکنیم ما در این در کتاب مستدرک این جلد یکش صفحه چهارسد و و این حدیث در کتاب به اصطلاح جعفریات آمده ایشون متاسبانه تفتیه اشتبه بلچونی تفتیه شما و در کتاب جامع الاسلام اسلام آمده اونی که هم تفتیه کرده هرزار تفتیه کرده اون روایتی که هست حدیث شماره به یکش باب از این کتاب صفحه چهار بیشون از جعفریات نرکده. شرح سندش گذشتی که تقرار نمی کنم. از پرم جعفریات بردار آمد و ما اصحابه داشته تقرار نکرده. تا انه علیه بردی کادر سرات الله سلام علیه احتمال میدم که این واقعا در همون کتاب بوده. حالا شاید نسخه از اون کتاب بوده. یکیش اینجوریه. قال لن رسول الله. ما الان در مسابقه اهل سنتی رو نداریم. اما اجمالا از خود فعیت پیغمبر داری لیا خود اهدو من شعر صدقی صاد و دال و غین صد این قسمت رو میگه فلور این قسمتی که از ما اول ریش آویزان میشه صدق رو میگه لیا خود اهدو من شعر صدقی و من آرز لحیته این قسمت که از بزار روی لقه هست بله از این قسمت من آرز لحیته از این قسمت گلسته بشه لیا قد احد کن من شعر صدقی و من آرز لحیت و امر قال یعنی قال امیر المومنی و امر رسول الله انترجل لحیه فهم در محاصل تونم شانه کن ترجیل شانه کردن شانه کشیدن برسیم این یک ربایی که در کتاب جعفریات هم آمده و در هم بابم است با هم سمج لیکن اینجا داره قال علی یا نه علیه السلام ان نه علیه امکانیه بود به اصطلاح احسانه داره از کردیم حدیث اول مرفوع یعنی هم رسول الله حدیث دوم موقوفه یعنی علی علی السلام اولی رم امیر مومین نه همونت کلام خود امیر لذا شاید دو میرایش از اون کتاب بوده شاید شاید دو جایی کتاب بوده یکیش بانوان کلام امیر مومین یکیش بانوان کلام رسول الله خب این ذرافت ایسیار نکنه مثلا بزرگان ترجه نکردن مثلا باقیقی رسوله بیگوزه باقیقی رسول شده نه از عجایب اینه که در این کتاب دو تا روایت یکی از انی رومانی خودشون یکی انی رومانی رسول الله این, این مطلب هم در دعایم آمده این خیلی عجیبی اینه این, این مطلب تو دعایم چون هست که الاسلام با صاحب جهر در یک شهر بودن در نفس بودن همزمان بودن برای صاحب جهر قبل از صاحب دعایم فرد که ده سال نه ساله آداده شد و این هم خیلی عجیب واقعا برای انسان. یعنی چقدر دائماً همین کارو کرده یک جوسه قال علی بن قال رسول الله یک جوسه قال علی <تصفيق> چه ها می‌کرد نه واقعا الان ماها خیلی پساو مه داریم چقدر دقت در این کاره به هر حال و منعار ذلهیته قال و امر انتراج ترجل این مال قال رسول الله در کتاب دعاه در باز جعفریات خود دقت بکنید باز جعفریات این طور داره ان علی ابن علی طالب قال کان یهول قیل از این که حالا کلامه اصول و نهفه کلامه خودم این من شعر صدقه و من آرز لحیه تقرد کردیم؟ خوضو من شعر صدقه از این عین همین روایت علی ابن از صدقه و آرز از روی لبا بگیریم و من عارض لحیه از این قسمت از از ارز لحیه از بگیریم و عجیب این آرخی واقعا چیز عجیبه چیز واقعا عجیب کتاب کتاب بل و بنا آرز لحیه و ما جاوزال قبضه, جاوز قبضه من مقدم لحیه فا جزو خیلی اچه و ما جاوزال قبضه من مقدم لحیه فا جزو یعنی از چی بگیم درست اون چی دیده که سا و سایه جمع کرده این دوتا رواید این نفس رواید دیگریه اون جمع سا و سال لیکن چون ساحب و بر جهتر یاد و دعای اعتماد نکرده نه یه حضومت این عجیبش اینه یعنی دقیقه اون از کن خیلی من اگه دخب کردیم اگه نواید بشونه هز هم ساحب و که رو هم میکرد یعنی ساحب و از یک حدوث مستقیم نگرفته چون خودش گفت لمایتی گفت لمایتی هم کرد گفت حالا محمول اون این نشون میده دقت هم به ساحب چون اونی که سال مسائل هم کرده به انگه سومت میبایده <تصفيق> نفتر لفترونی روایت قبضه رو زده به مقدم اللحی لما جا و ذر من مقدمه اللحی فجوزور اون مقداری که در مقدم اللحی بیشت به اصطلاح قبضه هست بشینی جل چی لر قیچی کنی اون رو چه؟ خدا رحمت صاحب و رو چقدر لطیف شاید کتاب دیگه چون رواز قبول نداشته نتیجه رو اوگرده شاید این اون استدهادیشون تو مقام جمع کرده به اینه مهد به بایدی چیزی از چیلیشون قبول نداشته وقت در دائم الاسلام هم این طور آمده خیلی عرضی بودن دعایم الاسلام اما علیه قال ببینید این شماره 3 در اون باب ان علیه در شماره 4 این جنورسی. و انها علیه السلام ان رسول الله انها ان علیه انها رو به نزنید و ان علیه ان رسول الله عجیب است هم تو یا دو تا داره البته متونش نزدیک به هم اصلا اختلاق هم داره یکی علیه آلا رسول دار آل یکی علیه به نفسه دقیقا کاره کرده دائمان علیه این رو بوده خلوم شعر صدقه و من آرزه اللحیه آرزه داده که آرز شاکره و ما جاوز الانفقه یا انفقه من مقدمه ها و ما جاوز انفقه من مقدمه ها این هم جوز عجالی کاری وما جا وزر انفقه انفقه یا انفقه این به رسال موهایی که این زیر پیدا میشه زیر لب خود کلمه انفقه رو ورده عبضه نه برده. انفقه رو اوزه مخواد میکنی زیر لب هم خیلی طولانی نشه شاید در بوده که مقدار قبله از لب بگیرین چه مقدار این مقدار که این موهای زیر لب مثلا این دراز بشه وما جا وزر الانفقه من مقدمه رهی بوشعتی و دقت بکن موثونه تاریخی رو این روایت در نسخه که ما از, از, از, از, از چیز داریم ها و ما جا و زر قبضه کلمه در کتاب جمال <تصفيق> در نسخه که ما داشتیم قبضه <تصفح> <تصفيق> در نسخه صاحب جامع الفخ کلمه <تصفيق> البته در نسخه یه ما داره فجوزو قیچی کنید این فجزو هم دیگه در کتاب دعای نیامده در خطیه هم قیلی این اختلاق نسخه چون نسخه مصریه این نسخه مصری اون معاصرش انفقه نوشته نسخه ما قمزه آمده انفقه باره سال و نمیشه اما قمزه میشه به احتمال قبضه قبیلتره اگر این روایت درست باشه غیر از مسئله عبدالله عمر که ازمونه پر اولیه مسئله قبضه در رهی را حمد به امیر نسبت داده میشه اینه که از امیر نقل شده چون تو اون نقلی که از امیر مومن هست اونجایی که امیر از رسول الله فرزه نیه اونجایی که کلام خود همیونه قرده توش هست اونجایی که از رسول الله قرده توش نیست. این حدیث شماره چهار من شماره چهار این طوره یا یعنی نه علی یعنی ان رسول الله قال لیا خود اهد من شعر صدقه و من آرز لحیته و رجلو اللحا. رجلو ها رو به ها بکن و احکو شعرالقفا صاحب این حدیث چی کفاره کرده این رجل الله ها رضا نیورده اما احکو شعرالقفا تو بالاقفا اوورده احکو شواره و, و احکو از سبال و قبل موله از فار و لاسه شد و هو به احره کتا حالا دکت ظرافت نفت روچن شد ایشون در اون جایی که کلام رسول الله قبوزه توش نهی برده. برده چی گفته؟ گفته احفو از سبال سبال از کرده هم به سبیل میگن هم بریش ریش موهای روی چانه که از لب لم میشه این اونی که از پیغمبر نهار کرده احفو از سبال اونی که از علیه نهار کرده لما جا و ما جاوزل من مقدمه ها فر جزو این البته چیزه یعنی تو نوصه قران داستان حالا با انفقه و جزو باشه نباشه این بجای انفقه و اعفو سبان پیغمبر سبال سبا این موهای زیر لب زیر لب بگید چی ضروریه چی دیرش که چون سه بال احتمال داره مراد یک حد محدودی باشه چون زیر رو حساب کرده نه هر حدی بخواد در رازش پس این مجموعه روایت معلوم شد این روایتی که الان در کتاب بن جعفر هست به احتمال بسیار بسیار قوی اصلش در کتاب سخونی بوده در کتاب محمد مسلم بوده و در کتاب حلوی هم احتمالا بوده مسائل حلوی و اصل اصلش هم برمیگرده به کتاب قضایی آوست شنن و احکام احتمالن اصلا تره عبضه احتمالا طبق این تصورات از همون نیمه اول و قرن اول در کوفه بوده مثل حصول امیر در کوفه و نتیجهش این بوده همینی در از میشه کوتاه کرد مقایده در قبضه نشین از جلو مقایده در قبضه بشین از جلو اخذ اصطلاح جایزه لیکن مازاده عنوی قبضه مازاده عنوی قبضه مکروهه فاقود فالفیه لیکن مازاده عنوی قبضه از جلو مکروه. این تاریخ این روایت بود این اگه درست باشه اجمالا میشه بهش قبول کرد ما با این مفرداتش الان موشید بس, <سلام> بس <سلام>